اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستاین بحث مالکیت فکری جلسه هشتم بحث ما پیرامون کسانی است که موافق با مالکیت فکری و معنوی هستند و حقوقی که بر او مترتب می شود انجمی دلیلی که برای اثبات مدعای خودشون آوردن عبارت است از قاعده صحت کسانی که موافق این مالکت معنویان اعتقادشون بر است که در مشروعیت بخشیدن بسیاری از مسائل مستحدثه این اصل کاربرد داره اگر ما در صحت یک مسئلهی گفتن از نظر فقهی شک داشته باشیم بر اساس این قاده به صحت او حکم می کنیم. لذا در مسئله ما مانند مالکیت فکری که شک داریم آیا مورد تایید شاره هست یا نه چون دلیلی بر عدم صحت او نداریم با تمسک به اصالت الصحه حکم میکنیم که این مسئله مورد تایید اشاره هست البته در رابطه با این قاعده اینکه آیا می شود این قاعده را در این مورد پیاده کرد یا نه بعضی ها گفتن اعتقاد دارند که این قاعده در صورتی قابل اجراست که شرایط عرفی و شرعی معامله و عقد محرز باشه لذا چون شرایط عرفی و شرعی حقوق مالکیت معنوی هنوز اثبات نشده لذا برای حقوقی که بر این مالکیت مترتبه تن که به اسالت صحه نمیشه بکنیم لذا پیش از اثبات شرعی بودن این معامله از جمله حقوقی که در اینجا بناس اثبات بشود نمیشود از اصل صحت بهره گرفت اما بنابر نظر بعضیها خیر ولو ما شک داریم که آیا مالکیت معنوی مشروع هست یا نه همین که شک داریم آیا حقوقی بر او متربی می شود یا نه استفاده از اصالت و برای اعتبار بخشیدن به این مسائل محتسه گفتن امکان پذیر هست لذا اینکه آیا امور معنوی و فکری اینها می توانند منشأ حق بشوند برای مالک های اونها حمله بر سهت میکنیم و با غایر اصالت و سهت میگوییم چنین حقی برای صاحب آن آثار فکری، معنوی، ام از فرهنگی، تجاری و الآخر وجود دارد در نتیجه این امر مشروع است و لذا مالکین آثار میتوانند قید بزنند، شرط بگذارند و یا اگر همه شرط نگذاشتند بلو بدون شرط اون کسانی که از آثار اینا استفاده می کنند، اگر بخواهند به تکثیر، تولید و استفاده هایی که موجب منافع مادی است چاپ کتاب مثلا تکثیر سیدی و آخر باید از صاحبان حق ازن گیرند و رضایت اونها رو به دست بیاورن اونها حق دارن که ممانعت کنن و ازنی ندهند این خلاصه تمسک به این اصل به نظر میرسد تمسک به این اصل برای اثبات شرعیت حقوقی مالکی مالکیت معنوی تام نباشه با این توضیحاتی که داده شد چرا؟ بود قاعده صحت اگر بررسی بشود مشخص خواهد شد که این قاعده برای حل مشکله مشروعیت حقوق مترتب بر مالکیت معنوی چیزی رو اثبات نمیتونه بکنه چرا در رابطه با اسالت و الصحه که این یک قاعده است از قوائد. حالا چه قاعده فقهی او رو بگیریم چه قاعده اصولی آنچنان که اختلاف هم هست که آیا این قاعده فقهیست یا اصولی در چند جهت جهات متعددی حدود نه جهت می شود بحث کرد اون جهاتی که در رابطه با تمسک به این قاعده است برای اثبات مالکیت منوی و حقوق آن چند جهت هست که به صورت مختصر بیان می کنیم. اولا مورد اصالت و صحه عمل غیر است یعنی ما در جایی می توانیم این اعصر را جاری کنیم که غیر از ما عملی انجام داده و ما شک می کنیم آیا عمل او صحیح هست یا نه پس نسبت به عمل خود انسان این قاعده جاری نمی شود و همچنین اصالت الصحه مال جایز که یک نفر در هنگام عمل یا بعد از عمل دیگری شک میکنه که آیا عمل او صحیح است یا نه حالا چه ضمن عمل باشه چه بعد العمل عمل پس بنابر این میاد قاعده صحت رو جاری میکنیم میگه انشالله عمل این آقا درست است یا اگر بعد از عمل بوده میگه انشالله عملش درست بوده است خب این یک بحث در حالی که ما بحث ما قبل از عمل است و مربوط به عمل خودمان است که آیا یک مکلف بندی که دارم انان بحث میکنم آیا با ایجاد یک اثر فکری و معنوی حقی پیدا میکنم یا نه بله پس اینجا در راوت عمل خودم و عمل یک مکلف به ما هو و هوه داریم بحث میکنیم نه عمل غیر خودم و قبل از انجام این عمل است یعنی قبل از اینکه اصلا کسی آثار فکری رو اختراک کرده باش کنیم بحث کنیم اگر کسی اثر فکری و معنوی رو تولید بکند و ایجاد کند آیا حقی بر او پیدا میکند یا نه لذا این قاعده نمیتونه شامل بحث ما بشود بحث دوم در رابطه با قاعده اصالت و این است که اصالت و صحه دو تا معنا دارد یه موقع ما صحیح میگیم در مقابل قبیه اصالت و صحه معنیش میشه اگر کسی عمل رو انجام داد کار رو حمله بر عمل حسن و مباه بکن نه حمله بر کار قبیه حرام خب اصالت و سعی به این معنا خب ادله فراوانی در از آیات و روایات مثلا داره اجتن بود کثیرم من از زن نه از اسم شما اگر زن به بدی کاری که پیسی پیدا کردید نه بو انشاءالله این کار بدی نکرده حرف بدی نزده است یا قولو لناس حسنا خب روایات آمده یعنی نسبت به مردم همیشه خیر بگویید لالو شکر دارید کار شدیه به انجام بیان آدم خوبیه روایات هم همینطور طور فراوان داریم و امر اخیک علی احسنه همیشه برادر مؤمن و مؤمن دیگر را کارش بر احسن او حمل کن یعنی اگر احتمال حس میدی یا بهتر میدی حمله بر او بکن حمله بر قبیح نکن یا روایت که ان المؤمن لا یتهم واخا هو المؤمن مؤمن هیچ موقع بدبین نیست به برادر مؤمنش یا در اون روایت که میگه کذب سمعکه و بسر که انا اخیک اگر میبینی یک نفر حرفی زده پنجاه نفر شهادت به این آقا فلان حرف زده ولی از خودش طرف سوال میکنیم که من نگفتم روایت میگه چشم گوش خودت رو تکذیب کن و اون حرف همین آقایی که مورد اتحامه تصدیق کن و دیگران اون پنجاه گسامه رو که میشن صد نفر گسامه بیانه است پنجاه تا گسامه میشه صد نفر اونا رو تکذیب بکن منظور حمله این حرف این آقا رو حمله بر سق کن منظور نیست که آثار واقع رو جاری بکن چون اگه بحث آثار واقع خب انسان حرف پنجه صد نفر رو باقت مقدم بداره چرا؟ چون اونها اشتباه و صحف از اونها خیلی بعیده تا نسبت به یه نفر بلخواه اونا مؤمن دیگه ما بلخواه باید برادر مؤمن، ستان برادر مؤمن او اونها اونا هم باید متصدیق کنیم ترتیب اثر رو به اونا باید بدیم ترتیب اثر دادم به هر دو طرف که ممکن نیست بگم هم به حرف این عمل کنم هم حرف او اگر بگم به یه نفر عمل کنم به تا عمل نکنم که ترجیح یک نفر بر صد نفره اینم که درست نیست در نتیجه نه منظور این است که حرفش رو تصدیق کن بگو باشه تو درست میگی در اعتقادت اینگونه باش اما ترتیب اثر نه اصالت و صحب این معنا که در مقابل قبیه باشه مختص به مسلمون هاست لذا در کفار جاری نمیشود ولی بله چون دارند من حقوق ال اخووت هست بین مؤمن و کافر که اخوتی نیست در حال که بحث ما هم همینطوره اول از این ما صحبت سر حمله بر صحت نیست که بیدون آدم خوبی آدم بد نیست سانی هم مدعای ما کلیست که بخواهیم هر کسی اثر فکری دارد آیا حقی هم بر او ایجاد می شود یا نه چه مؤمن چه کافر اما قاید اصالت و این معنا فقط در حق مسلمان هاست در حق کفار جاری نمی شود پس اصالت و صحب این معنا اصلا محل بحث نیست و هیچ اثری هم بر اون مترتب نیست خب رضا شما اگر یک جمله رو از یک مسلمانی شنیدی نمیدونی سلام کرد به شما یا فوش داد بله میگن حمله و صحت بکن یعنی بگو انشالله فوش نداده سلام کرده اما جواب سلام هم بر شما واجبه نه چون یقین نداره که نقا سلام کرده فقط سوء زن نداشته باش بگو نه انشالله به من فوشی نداده اما جواب سلام هم بر شما واجبه نه این با این قاعده به این معنا ثابت نمی شود سه حت به معنای دوم در مقابل فاسده اسالت تو سهه یعنی ترتیب اثر بده بر عملی که از دیگری صادر می شود خب اسالت و این معنای دومش دیگه عام است شامل کافر هم می شود سو معامله که یک کافری انجام داده و اونی که امکان داره مورد بحث واقع بشود برای این مسئله ما از صحت به همین معنای دوم است یعنی قاب تحتیب اثر می شود دار. اثر شرعی دارد آیا این اسالت و به این معنای دوم مدرکی هم دارد، بله چهار تا دلیل برایش ذکر کرده هست اگر چه قالب اینا مختوش هست، اولا اجماع اجماع محسل داریم که فتواه فقه ها رو متطبع می کنیم، همه اینجور فتواه دادن که اگر مؤمنی کسی، حالا بر غیر مؤمن، کاری انجام داد شک داریم این کارش مؤثر است یا نه شما همون رو سهد کن ترتیب اثر بده و او را نافذ و مؤثر بدان ولی ظاهرا این درست نیست. اول از این چنین اجماعی نداریم که در همه موارد چه مسلمان چه کافر، چه عقد، چه ایقاعات، چه معاملات به معنی عام که شامل طرف نجاست هم میشه، تو همه این موارد همه میگن حمله به صحت بکن. آن و چیزی را که نمیدونی پاک نجسه بگو پاک است. آن ولو دست هر کسی و هر چیزی در هر جایی باشد این چنین بگو. نه ما اجماع به این معنا نداریم. سانیان اجماع حجت نیست از نظر همه. حجت اجماع مخدوش است. ثالثاً بر فرض اجماع هم داشته باشیم این اجماع مدرکیه نتاعبودی چون احتمال داره دلیل فتابای آقایون این مورد دوم دو و سو سوم و چهارم باشه که ما میگیم اجماع تعبدی حجت نه اجماع مدرکی. و پس بنابراین این نه به اجبار نمیشه تمسک کرد دلیل دوم قاعده صحت به این معنای دوم آیه شریفه اوفو بالعقود است یا الا ان تكون تجارتا انتراز است که گفتن آقا بنابراین که البته تجارتا انتراز اوفو بالعقود این مخصوص به متعاقدین نباشه شامل همه مکلفین میشه که اوفو بالعقود که همه مکلفین مأمورند وفا کنند به اون عقدی که از این صادر می شود یعنی آثار صحت رو برش بار بکنند به این دو تا آیم نمیشه عمل کرد و دلیل بر اصالت السهن نیستند چرا اولا این اوفو بالعقود الا ان تکونت تر مخاطب متعاقدینن. نه همه مکلفین ثانیا مخاطبشم ولو آم باشد این شامل ایقاات نمیشه فقط مختص به اقود است سالسن اگر کسی بگه این اقودی که اینجا آمده معنای لغوی دارد نه معنای اسطلاحی که در مقابل ایقاات باشه این معاملات به معنای اعم رو شامل نمیشه مثل اون و نجاست و اله آخر خب بر حال کسانی که قائل کسان به اسالت و سهن ادعاشون آمه صحت عمل و ترتیب اثر در همه موارد میخوان ثابت بکنن نسا نه این دوتا آیه حد در ای دلیل بر بعضی از مواردن یعنی اخص از مدعا میشن رابعن در مواردی که ما میخواییم از حالت سهر جاری کنیم شبه ما همیشه شبه است. ها یعنی چی؟ یعنی اصالت سر اصلی است که در شبهات موضوعیه جعل شده نه در شبه برای شبهات حکمیه یعنی در موردی که یک موضوعی نمیدونه مطابقه با حکم است یا نبگوه انشالله مطابقه حکم و ترتیبه اثر بدهد. نزا گفته شده که در موارد تمسک به آم نمیشه در شبهات مصداقیه تمسک به آم بکنیم ما پس این دلیل هم کافی نیست اما بحث سوم گفتن آقا قاعده ید یه تعلیلی داره اون تعلیل به درد قاعد اسالات وسهم می خورد تعلیل قاعده یت که این است که اگر به قاعده ید عمل نشود برای مسلمین بازاری باقی نمی ماند لم یستقیم للمسلمین سوق و مشمول اسالات وسهم میشه چون اگر ما نخواهیم در جامعه به اسالات وسهم عمل بکنیم اصلا بازاری شکل میگیره، آجر آجور رو آجور بند نمی شود اما این دلیل سفرم هم تام نیست این هم اخص از مدعاست چرا؟ چون اگر ما از سالات و فقط تو عقود و ایقاعت اجرا کنیم کار مردم را میفته و سوق المسلمین مستقیم می شود ها اما اگر تو عبادات این کار نکردیم تو معاملات بیانه اعم این کار نکردیم نه اختلال در بازاری به وجود نمی آید دلیل چهار رومی که برای اصالت و صحبه معنای دوم آوردن گفتن آقا سیره قطعیه داریم از همه مسلمون ها و متدینین که اگر مردم عملی رو انجام میدن حال حالا چه عبادت، چه معاملات، عقود، ایقاعات حمله بر صحت می‌کنن. مثلا اگر کسی با یک خانم ازدواج کرده یه احتمال صرف میداد نکنه عقد ما باطل باشه نه اعتنا نمی کنه و این سیره تا زمان معصوم اتصال داشته و بوده و کسی هم خود شاره نکرده است ظاهرا دلیل سیره می تواند دلیل خوبی باشد برای اصالت سب به معنای ترتیب اثر دادن ولی باز نه ما نمی توانیم بگیم با این دلیل مسئله خودمون میتونیم حل بکنیم چرا بحث ما شبه حکمیه است از سالت و به درد شبهات موضوعیه میخورد و موردش شبهات مصداقیه است و موضوعیه است ما در شبه حکمیه بحث داریم که آیا آثار فکری و معنوی موجب حق هستند یا نه؟ در یه حکم کلی شک داریم اصول مال احکام کلی و شبهات حکمیه نیست. سکومین نکته در قاعده اسالسه این است که منظور از صحت صحت واقعی است نه صحت اندل آمل یعنی یک عملی میدانم صحیح است. شک می کنم کسی که داره عمل به این وزیفهش عملی میکنه آیا متابقه با وظیفش عمل کرده یا نه شما حمله ترتیب اثر بده بگو انشالله مطابق با واقع است خب از این جهت هم اگر نگاه کنیم باز میبینیم نه این به درد بحث ما نمیخوره چون اصل حکم کلی در اینجا مجبوره ما در عمل آمل شک نداریم مثلا شک داریم چنین قاعده داریم اصلاً چنین مسئله شرعیت داره از نظر شر تا بعد شک کنیم آقایی که، خانومی که، فرد و کلفی که حالا داره عملی می کند شک می کنیم کامل و صحیح این قاعده می شود یا نمی شود اون موقع حمله بر صحت می کنیم و ترتبع اثر می دیم. اما ما، نه، صحت واقعی رو نمیدانیم دانیم نزا اصالت و صحت میگه تو حمله بر صحت واقعی بکن یعنی یک چیزی به حسب واقع صحیح هست عمل شما نمیدارم دارم صحیحاً انجام شده مطابق واقع هست یا نه بگو انشالله ترتیب اثر می دیمیم مطابق واقع اما در جایی که واقع اصلا مجهوله مبهمه مشکوکه ثابت نشده این قاعد اصلاسه جاری نمی شود خب جهت دیگر بحث این از که شک در سه سه جور قابل فرضه یه موقع شک داریم فائلی که داره عمل انجام میده قابلیت انجام این عمل رو داره یا نه یه موقع شک داریم اون موردی که فائل دارن مورد انجام میده اون مورد قابلیت داره یا نه یه موقع شک ما سر این از که نه میدانم فائل قابلیت داره موردم قابلیت داره شک در وجود مانع دارم یا عدم شرط احتمال میدم این آغاش شرط این عمل را به جا نیورده یا مانعی رو مرتکب شده است قدر متیقن از اصالت و در جایی است که انسان یقین داره فائل قابلیت اجرای اجرا اون عمل رو داره موردم قابلیت تعلق عمل فائل را و مکلف رو دارد حالا شک میکنم صحیحا انجام شده یا نه هم به صحت کنم و انشالله این موردش که درست است و فائلش هم که قابلیت این کار رو داره انشالله درسته و ترتیب اثر بدهد اما در اونی شک در قابلیت داریم یا قابلیت فائل یا شک در قابلیت مورد داریم نه در اونجا ها ولو مسئله اخترافی است اما قول تحقیق اینه که از حالت و سهت جاری نمی شود خب قابلیت مثل چی؟ مثلا مبی باید مالیت داشته باشد حالا رو شک داریم. مثلا مالیت دارد یا نه؟ خب یا نمی شود مصالت و جاری کن یا مثلا فائل باید بالغ باشد نمی دونیم آیا این کسی که عقد و جاری می کنه بالغ هست یا نه؟ نمیشه شود بر سهت بکنیم پس بنابراین در هر جایی که میخوام اصالت فسد جاری کنیم باید قابلیت چه قابلیت و ارفید چه شرعی هم در مورد فائل و مورد احراز شده باشد شک در صحت عمل داریم و چون ما در رابطه با اصالت فسد دلیل لفظی نداریم که تمسکی به اموم اطلاقش کنیم گیریم باید شک در قابل هم میگیره قابل فاعل رو میگی شک در مورد هم میگیره تنها ما و لبیس که سیره باشد و احراز نشده که سیره جاری بشه در اونجایی که ما شک در قابل قابلیت فائل یا قابلیت مورد داریم به همین جهت اگر کسی اومد زید خونه رو بفروشه اعتراف هم داره خونه مال امرو ما شک میکنیم وکیل یا نه اوغلا اقدام نمیکنه به خریدن خونه او یا زید مثلا داره زن رو طلاق میده شک داریم واقعا امر به او بکالت داده یا نه نه اینجا ترتبه اثر نمیدهند یقینا نمیدهند برفضم که شک بکنیم همین کافیست که اصالت و سه جاری نشود چون دلیلی نداریم سیره فقط در جایی است که هم فائل و هم مورد قابلیت اجرای عمل رو داشته باشند پس بنابراین ما نمیتوانیم این حرف رو قبول بکنیم حالا در بحث ما بحث سریع این است که اون کسی که اثر فکری و معنوی دارد او میتواند حقی نسبت به این عمل خود و نتیجه کار خود داشته باشد که تصرفات منفعتدار رو متوقف بکند یا نه و شک در این داریم که آیا این فائل قابلیت این کار رو داری یا نه شاید شک در مورد بفرمایید. آیا چیزی که ما فکر آثار فکری هستند و آثار فرهنگی هستند معندی به هستند اصلا این مورد قابلیت برای تعلق گرفتن حق نسبت به استفاده دیگران هست یا نه؟ نه اینجا نمیتونم آثارت رو جاری بکنیم ولی شیخ انصاری رحمتالالله نظرش این است که میشود اجرا کرد و اشکالی ندارد ولی ظاهران قول تقیه این که این کار رو نمیشه انجام داد چرا؟ به خاطر این که صحت هر چیزی به حسب خود همون شیع است از اگر ما در یه عقد یک طرف عقد یقینا درست یا با اساس درست کنیم نمیشه صافت کنیم طرف دیگر هم درسته بازه اصل عقد درسته است نه ایجاب موقعی قبول است این معنا که اگر قبولم به او زمینه بشود این عقد مرکبین دوتا مؤثر است اما صرف صرف اینکه ایجاب این صحیه با اصالت و ثابت نمی که این قبول وجود پیدا کرده و حتی صحیه است خب پس منابر این این مطلب قابل قبول نیست و بازم جای اجرای اصالت و نیست خب یکی از امور دیگه ای که ما در این باب اصالت و به عنوان بحث می توانیم مورد بحث قرار بدهیم این است که آیا برای جریان اصالت و سحه لازم است که ما اصل عملی را که احتمال داره صحیح باشه یا فاسد باشه انجام بدیم اونگه شک که در صحتش بکنیم ظاهرا چنین چیزی لازم است که اصل عملی که جامعه بین سی و انجام بشود حالا که شک که در صحت کردیم خب با قاید اصل و ترتیب اثر می دهیم خب اما در جایی که اصلا شک که در اصل تحقق عمل داریم نه در اون مواره اصل صحت جاری نمی شود و جا ندارد خب حالا در بحث خود ما بله آقای عملی انجام داده است اثر فکری به وجود آورده است حالا برای خودش حقی قائل است ما نمیدانیم این حق مشروع هست یا نه حالا آیا با اصالت و صحه میشود در اینجا صحت عمل رو ثابت کرد و صادر کرد یا نه و مطابق با تنبیهاتی که قبلا بیان شد ممکن نیست چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه ما در مشروعیت خود حکم و اصل مسئله شک داریم از حالت زد در که حکم مسئله واضح است موضوعش هم کاملا مشخص است یک عاملی در مقام عمل عمل را بگونه انجام داده است ولو یقین دارم فائل قابلیت انجام عمل را دارد موردم قابلیت تعلق عقد را دارد که بر چنین شهی عقد بسته بشود حالا شک داریم که آیا این عقدی که عملی که در خارج واقع شده است سیحن مطابقه با واقعی که مسلم است واقع شده یا نه اصالت و سهمگه حمله به سعد کن ترتیب اثر بده و اون عقد را اون نقل و انتقال را و اون آثار را ملتزم باش اما در بحث ما در اصل مشروعیت ما داریم ما در اصل این شک داریم که آیا اصلا چنین حقوقی و چنین مالکیتی مورد تایید شارع حساب می شود یا نه به عنوان مثال و نظیر کسی خمر را میخواد مورد معامله قرار بده آیا و شک داره که آیا خمر قابل معامله کردن هست یا نه به صرف اصالت و صحر نمیتونیم بگیم نه این درست است معاملت درست و اشکال نداره یه مخواه شعره سریحن نهی کرده خب میدونیم عقد باطله یه موقع سریحن گفته اشکال ندارد خمر اشکالی نداره خب اون عقد یقینا صحیح یه موقع شک داریم در موارد شک دیگه نمیتونیم به اصالت و سهه تمسک بکنیم چون قابلیت مورد احراز نشده است لذا به اصالت و برای اثبات حقوق مالکیت معنوی تمسک کردن جایز نیست مسال الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین